ترانوا و جاده کابه به موازات هم ادامه می آفدند. در جاده افرادی دیده می‌شدند که آهسته پیاده راه می‌رفتند یا یا برگاهی سوار بودند همگی به سمت کابه می رفتند. وقتی ترانوایی که ما بر آن سوار بودیم از کنار صدها نفر از این آوارگان گذشت به خاطر تصادف یا چیز دیگر ناگهان با تکان شدید توقف کرد چی شد؟ اینجا که ایستگاه نیست، همین است که در باره فساد راه آهن دولتی حرف میزنند. شخصی این را گفت و از ترانوا پیاده شد. او از خط ترانوا به جاده رفت کیسه بارش را روی دوش جا به جا کرد و بدون اینکه به عقب نگاه کند به سمت کابه حرکت کرد. مردی میانسال سال و سالم بود. به نظر نمیرسید حالا حالا ها ترانوا حرکت کند به خاطر ادهام نمیشد بدن را داد به همین خاطر فضا بسیار گرم و غیرقابل قابل تحمل شد. چی شد راه آهن دولتی؟ حرکت میکنی یا نمیکنی؟ اگر حرکت نمیکنی من هم پیاده می کسی این را از جایی درون ترانوا گفت. یکی چهار دست و پا از پنجره ترانوا بیرون رفت. از جایی که من ایستاده بودم دیده نمیشد. اما پشت سر او سه چهار نفر دیگر هم به همان شکل خارج شد. به نظر میرسید دواز دوازده سی نفری بیرون رفتند. خوشبختانه کمی جا باز شد و توانستم نیمی از بدنم را از پله ها تو بکشم. همسرم و یاسوکو کاملا داخل بودند. زنی که بچه مرداش را در پارچه سفید به پشت داشت روی پله هایی ایستاده بود. بیرون پنجره مسئول کنترل راه میرفت و می گفت مسافران عزیز حادث پیش آمده لطفا کمی صبر کنید. همان وقت. سه، چهار نفری از پنجره بیرون رفتند یک گروه که به نظر میرسید اعضای یک خانواده باشند با کمک همدیگر از پنجره خارج شدند بچه رو لطفا بچه را که افراد داخل به بیرون دراز کرده بودند گرفت کسانی هم بودند که از فرت ازدهام خارج می شدند. به این ترتیب چون کمی راحت تر شدیم مسافرانی که تا آن لحظه ساکت بودند شروع به نجوا کردند همه درباره انفجار امروز صحبت می کردند. همه بدون هیچ شناختی از هم با یکدیگر درباره دیده ها و شنیده های خود صحبت می کردند. هرچند با کنار هم قرار دادن صحبت های همه باز هم چهره کامل حادثه دیده نمی شود اما به همان صورت که به یاد میآورم آن صحبت ها را می نویزم. مرد چهل ساله سمت راستم ایستاده، پارچه ضد حملات هوایی را با تنابی به دوشش بسته، نصفه چپ صورتش سوخته و پوستش کنده شده بود. نسبت به من زخمی امیختر داشت، ابرویش هم سوخته بود، چشمانش آنقدر گود افتاده بود که به نظر می رسید نیاز به کمک دارد. آن مرد مدام به من نگاه می کرد و بالاخره گفت، شما کجا زخمی شده اید؟ وقتی جواب دادم در ایستگاه یوکوگاوا زخمی شدهام گفت من اهل شهرک فوکوشیما هستم. وقتی زخمی شدم که از پناهگاه ضد عملات هوایی بیرون آمدم. برای برداشتن کبریت و سیگار از پناهگاه خارج شده و در همان لحظه نور پرشتاب را احساس کرده بود. خواسته اطراف را ببیند اما همه جا کاملا سیاه بوده. دست و پایش را برای امتحان حرکت داده. چون حرکت می کردند با لمس دست به سمت در پشتی خانهش رفته بود این را که چهار دست و پا رفت یا عادی به یاد نمی آورد. وقتی حواسش جا آمده و بیناییش دوباره برگشته دیده خانهش در هم کوبیده شده است فکر کرده مستقیم مورد حسابت بم قرار گرفته است دخترش که دانش آموز بود با همسرش برای برنامه تخلیه و پراکند سازی به کابه رفته بودند دختر بزرگش که دانش آموز دبیرستان دخترانهی وابسته به شهرداری بود از صبح به شهرک نکاجی در داخل شهر رفته که محل کار آموزی تخلیه و پراکندگی بود نگران دخترش بود به آنجا می رفت که مقابل پل فوکوشیما با شخصی به اسم یودا برخورد کرد که از آن طرف می آمد آه آقای یودا خانت چی شد؟ ریخت، نگران سلامتی دخترم هستم و دنبالش به محل کار او در شهرک نکاجی ماهان می رفم. نه، نه، دانش آموزان دبیرستان دخترانه وابسته به به شهرداری همه از می رفتند. شما دارید به سمت دریای آتش می رفید. نه، ببخشید. این گونه از آقای یادا جدا شد و رفت. اما در راهی که می رفت، آتش همه جا به آسمان شعله می کشید. نه نه بیخیال خیال شو. آقای یودا دستش را کشید و بیخیال شد بعد به سمت شهرک کویی فرار کردند آقای یودا هنگام انفجار در منزلش در شهرک تنما بود به ظاهر هیچ زخمی بر نداشت اما از دهانش خونجاری شد وقتی دهانش را باز کرد و نشان داد دوتا از دندانهایش نبودند همچنین گفت که دست و پایش وقتی از او پرسیدند دندانهایت به کجا خورد گفت به جای نخوردند از دهانم بیرون پریدند نمیدانم چرا خونش بند نمیآید اقوام آقای یودا در شهرک کایی بودند به آنجا سر زدند و زخم سوختگی گونه با پارچه آقشته به روغن کانولا مداوا شد آموزاده ی آقای یادا که زخم سوختگی بزرگی بر پشت داشت افتان و خیزان آمد در شهرک تنما با باران شده بود پشتش مانند تاج بوغلمون جمع و زخمی و پوستش مانند برگ کاغذ روغنی جدا شده بود وقتی آقای یادا از او پرسید درد دارد جواب داد درد ندارد اما همراه خشک شدن گوشتش کشیده می شود و مانند فرو کردن سوزن سوزش دارد سرانجام داروی او هم فقط آغشته کردن زخمش با روغن کانولا بود مرد چشم گود افتاده این حرف ها را زد و گفت چی بود آن؟ من دردی ندارم من هم کوچکترین دردی ندارم. اگر سوختگی ما سوختگی آب جوش یا آتش بود، دست کم دو تا سه روز نمیتوانستیم بدون ناله بمانیم. اما حالا فقط هنگام خشک شدن زیادی پوست احساس سوزش میکنیم. فقط این موارد را به کل تعمیم دادن درست نیست. اما اگر با توجه به مورد من و مرد چشم گود افتاده فکر کنیم، آیا علتش این نبود که اعصاب زیرپوست سوخته و به دلیل حرارت زیاد از کار افتاده بودند؟ مسافرانی که به سبب سوختگی درد می کسانی بودند که سوای حرارت انفجار به علت آتش مستقیم زخمی شده بودند. بر اساس اطلاعات بعدی بمباران، ظاهران کسانی هم بودند که به شدت احساس درد می کردند. یادداشت اضافه شده. مسافری که نزدیکم ایستاده بود با گفتن ببخشید از پنجره استفراغ کرد این مرد یک بار دیگر هم حالت تهوع پیدا کرد و به سمت پله ها رفت مسافرانی هم که اسهال داشتند همه در پله ها جمع شده بودند افرادی هم که مدتی قبل چهار دست و پا از پنجره خارج شده بودند احتمالا دائم دچار اسهال شدند. من هم کمی حالت اسهال داشتم اما اگر بخواهم دفعاتش را از صبح شمارم بیش از یک بار در هر سه ساعت نبود. مرد چشمگاد افتاده هم گفت که هر سه ساعت یک بار دارد. همسرم و برادرزاده ی همسرم گفتند چنان وضعیتی ندارند. فکر کردم نکند بیماری اسهال خونی شیوع یافته باشد. اما مرد چشمگاد افتاده گفت شیوع اسهال خونی نیست. بلکه چیزی مانند بیماری بمباران است. با توجه به حرفهای آن مرد انسانها و حیوانات زمانی که در خوردن و نوشیدن زیاده روی می کنند یا چیزی فاسد می خورند به وسیله پدیده طبیعی اسهال یا استفراغ آن را از بدن خارج می کنند همچنین در موقعیتی هم که جسم خسته شود و عمل گوارش به درستی انجام نشود آن را از بدن دفع می کنند با اینکه هیچ کدام از این موارد قابل انطباق با این موقعیت نبودند اما بیشتر مصیبت دیدگان بمباران اسهال داشتند میشد فکر کرد که مواد موزر برای بدن از پوست گذشته هماهنگی دستگاه های مختلف درون بدن را مختل کرده و اختلال گوارشی بیش آورده بود شیره درون معده هم این مواد موزر را همراه راه به بیرون دفع کرده بود به عبارتی مانند لولاهای دستگاه دستگاه های داخل بدن هم برای چنین وضعیتی ماهرانه ساخته شدن از وقتی از حال داریم باید خودمان را راحت کنیم اگر به زور خود را نگه داریم کار لولاهای بدن به هم می ریزند مرد چشم گود افتاده این حرف را زد نوجوانی که روی سندلی نشسته بود صندلی خود را به پیرزنی تعرف کرد که کنار مرد چشم گود افتاده ایستاده بود دانش آموز سال سوم یا چهار راهنمایی بود حس قدردانی و کنجکاوی در پیرزن بیدار شد نوجوان با اینکه نمیخواست مخاطب قرار گیرد بارها حرف زد و مجبور به گفتن وضعیتش هنگام بمباران شد نوجوان با احساسی بد یک نفس حرف زد وقتی گلوله آتشین نورش را پخش کرد نوجوان در خانه بود جهیدن نور را احساس کرد و قرش مهیب که بلند شد خودش را از خانه بیرون انداخت همزمان با خراب شدن خانه او هم بیهوش شد وقتی به هوش آمد درون تیرک ها و چوب های زخیم گرفتار شده و پدرش در حال کنار زدن چوب ها بود پدرش در حالی که به سختی تلاش می‌کرد، برای بلند کردن چوبی که پای نوجوان در آن گیر کرده بود چوب گردی را به عنوان اهرم به کار برد شعله های آتش پیش آمدند و آتش به خانه ویران آنها افتاد پدرش گفت هی hey, سری پایت را بیرون بکش اما که پایش در چوب ها گرفتار بود و آتش از سه طرف پیش می آمد. پدرش به اطراف نگاه کرد. کاری نمی شود کرد. ما را ببخش. ما فرار کنیم ما را ببخش. این حرف را زد، چوب گرد را انداخت و فرار کرد. نوجوان فریاد زد پدر کمک. اما پدرش فقط یک بار برگشت، او را دید و نابودید شد. نوجوان ناامید شد. خودش را درون چوب ها فرو برد که ناگهان به نحو عجیبی دیگر گیر قوزک پایش را احساس نکرد. پس چهار دست و پا از میان چوب ها بیرون آمد. مثل کلکه تردستها ها به شکلی عجیب بیرون آمد بعد از سوراخ ایجاد شده در آتش سوزی فرار کرد وقتی به خانه امهش در شهرک میتاکی رسید پدرش همانجا بود خوشبختانه یا بدبختانه امهش هم در مشاجری پدر و فرزند هیچ سخنی نگفت. پدرش رفتار بسیار بدی داشت بنابر این نوجوان برای فرار از آن وضعیت و برای رفتن به زادگاه مادر مردش سوار ترن شد حرفهای پسر که تمام شد، ابرو در هم کشید و دهانش را بست. به نظر رسید پیرزن میخواهد سرزنشش کند، اما با دقت خودش را جا به جا کرد، در خود فرو رفت و هیچ نگفت. پیرزن شهست ساله سر سرحالی بود که دستمالش را مانند دوشیزه ها بر سر بسته بود. در سندلی های سمت پنجری که جاده از آن دیده میشد، زنی حدودا سی ساله با مردی حدودا پنجاه ساله نشسته بود زن لباسی با نقش های سلیب پاشیده بر زمینه سفید پوشیده بود و شلواری زرد رنگ و زمخت به پا داشت. زنی گوشت آلود بود که صورت و چشمانی زیبا داشت. مرد پیراهنی با نشان خانوادگی که ظاهرا آن را از کیمونو پدر بزرگشت تهیه کرده بود با شلواری از همان پارچه پوشیده بود و کفش پلاستیکی به پا داشت. به نظر می رسید خانوادهی هستند که کیمونا های رایج قدیم را نگه می دارند وای ببین او یوکی او نیست مردی که پیراهنش نشان خانوادگی داشت این را به زن گفت آن وقت زن بچه ای را که در جاده قدم میزد صدا کرد پسر بچه دانش آموز سال دوم یا سوم دبستان بود یوکیو او یک لحظه یوکیو او کجا می روی؟ ترانوا سوار نمی شوی؟ چرا سوار نمی شوی؟ پسرک ایستاد به این طرف نگاه کرد اما هیچی نگفت گردنش را هم تکان نداد و دوباره با بیحالی قدم زد ترکیب شهرک نکاهی رویستگاه سرا بر سطل آتش نشانی دستان پسر خاندم شاید هنگام انفجار بی اختیار آن سطل را برداشته و بعد هم به همان حالت ادامه داده و آمده است یک لحظه یوکیو این ترانوا به کابه می یوکی او چی شده؟ زن را از پنجره بیرون آورده بود و صدا میزد اما جوابی نمیشنید. رفت. آن سطلی که داشت. مرد پیراهن نخی گفت. اینجا و آنجا درون قطار صدای صحبت می آمد. با این همه صدای مرد پیراهن نخی به خوبی به گوشم می رسید. در حرف های این مرد چیزهایی درباره اهمال گروه پدافندی مستقر در شهرداری هیروشیما در زمان بمباران شنیدم گفت که حتی بعد از بمباران هم افراد گروه پدافندی در گزارش آن وضعیت وخیم به فرماندهان اهمال کردند حاشیهی از نویسنده ی کتاب اما بعدها در کتاب چهره واقعی بمباران اتمی اثر شیباتاشی گتورو که در روز ششم ماه اوت سال شوا. برابر با سال 1955 میلادی منتشر شد چنین گفته می شود در بعد از ظهر روز بمباران آقای ندا فرمانده گروه پدافندی با یادآوری ضرورت گزارش آن وضعیت وخیم در اطراف شهرداری قاصدی را به قسمت فرماندهی شماره پنج اعزام کرد مسلما هنوز زمانی بود که تصورش را هم نمی کرد تمام شهر آن وضع وخیم را دارد قاصد سرانجام برگشت اما گزارشش این بود که قسمت فرماندهی وجود ندارد یعنی چه وجود ندارد به هر حال هیچ چیزی نیست چرا نمیدانم این چونین سوال و جواب رد و بدل شد بعد هم در گزارش اضافه کرده بود که خندق اطراف قلعه قسمت فرماندهی با جنازه سوخته سربازان پار شده است قسمت فرماندهی در سمت برج و در حسار خندق داخلی قرار داشت در آن موقع بود که فرمانده قسمت پدافند واقعا فهمید که این وضعیت وخیم مانند همیشه نیست به نظر می رسد که آن مرد پیراهن نخی دارای نشان خانوادگی اطلاعاتش کم بود و به اندازه کافی نمی دانست آقای شیباتا هم بعدا به خاطر بیماری اتمی مر نحوه صحبت کردن مرد پیراهن نخی اعتراض و مخالفت را نه تنها نسبت به اعضای گروه پدافند که به نظامیان نیز در خود داشت. او گفت: « همین دو سه روز پیش داخل قطار به طور اتفاقی بخشی از احساسات مردم را نسبت به نظامیان دیدم. همین دو سه روز قبل مرد پیراهن نخی داخل قطاری بود که از یاماگوچی به هیروشیما برمیگشت با اینکه قطار پر از مسافر بود یک افسر نظامی چکمه بلندش را از پا درآورده و روی صندلی خوابیده بود با اینکه آن رفتار مستبدانه کاملا به چشمی آمد اما یک نفر هم اعتراض نکرد وقتی مسئول قطار هم برای بازرسی بلیت ها آمد خود را به ندیدن زد سرانجام وقتی قطار به ایستگاه توکویا رسید یکی از مسافران نصف نیگیری خود را درون چکمه بلند او انداخت و با چهره خونسرد خون سرد از قطار پیاده شد. سپس یکی دیگر از مسافران برای اینکه آن نیگیری به سرپنجه چکمه برود، آن لنگه چکمه را کمی تکان داد و از قطار پیاده شد و رفت. نظامی به خوابی عمیق فرو رفته بود. دوران کمبود مواد غذایی بود. پس مسافر دوم برای دست انداختن بیشتر آن قربانی عزیز این کار را کرد. مسافرانی که این صحنه را می‌دیدند با خنده به چهره خفته نظامی نگاه می‌کردند. چند نفر هم که از عاقبت کار می ترسیدند جای خود را تغییر دادند. نظامی در حوالی اتاکه چشم را باز کرد. چون نزدیک هیروشیما بود، برخاست، چکمه اش را پوشید، کلاه نظامی اش را بر سر گذاشت و سینه را صاف کرد. خیلی زود چهرهش در هم شد. به نظر می گیج شده، با دست پاچگی چکمه را درآورد. و وقتی نیگیری را دید با صدای بلند، مرد پیراهن نخی با ضربه آرنج زنش از حرف زدن نیستند. اما باز با توجه به موقعیت ظاهر خود را مرتب کرد. به زن کناریش که به نظر می رسید شوهر دار باشد گفت ببخشید به کجا پناه می برید؟ زن ناچار سرش را داد و گفت جایی ندارد. شوهرش استادکار بوده اما در جنگ کشته شده بود. برادر شوهرش هم در جنگ کشته شده. برادر خودش هم به جنگ رفته و یک نفر هم نبود که به او پناه ببرد. تنها فرزندش که پسر بچی چند ساله بود، در موج انفجار صبح امروز از نردبان افتاده و مرده بود. این زن در اتاقی کنار دیواری گلی زندگی میکرد، جایی که قبلا غذا خوری بود. شاخه های درخت اناری که از دیوار گذشته و به این طرف دراز شده بود، امسال پنشش انار آویزان داشت. پسر بچه که به شکلی غیر منتظره از محل تخلیه و پراکندگی برگشته بود آن روز صبح قبل از برگشتن دوباره به محل تخلیه و پراکندگی با تقلیل از آنچه مادرش انجام میداد نردبان را زیر شاخه درخت انار سرپا کرد زن ایستاد تا ببیند او میخواهد چه کند پسر بچه از نردبان بالا رفت یکی یک که میوه های انار را به دهانش نزدیک می کرد و خیلی آهسته به آنها می گفت، این دفعه تا برگشتن من نیفت در آن لحظه گلوله نورانی جهید و صدای مهیبی غرید. همزمان موج انفجار برخاست. دیوار فرو افتاد. نردبان برگشت و کودک با آجر دیوار با زمین برخورد کرد و دردم جان سپرد. پارسال در شاخی از درخت انار که به این سو آمده سه چهار انار آویزان بود. آن انارها افتادند بدون اینکه برسند. بنابر این امثال پسر بچه آنها را تشویق می‌کرد بدون مشکل رشد کنند. زن تصمیم داشت تصویری از انار به کودکش نشان بدهد. اما حالا حتی فکرش هم دل زن را به آتش میکشید. زن اینها را گفت و به شدت گریست. اگر نظرهای افراد داخل تراموا را کنار هم بگذاریم، می‌توان صدای ایجاد شده در لحظه جهش نور را به صدای دوگان صدای زا یا صدای دوات تقسیم کرد. من شک دارم بگویم صدای آن دوگان بود بلکه به نظرم صدای دواتسو را داشت. اغلب این عقیده را داشتند که مرکز انفجار نزدیک پل است. اگر آنجا را مرکز بگیریم گفته شده افرادی که در دو کیلومتری یا کمی دورتر از آنجا بودند صدای دوگان نشنیدند. افرادی که در فاصله چهار تا پنج کیلومتری آنجا هم بودند گفتند که در یک لحظه جهش نور را دیدند و بعد از چند ثانیه صدای دو را شنیدند فکر کردم فشار باد باعث صدای انفجار نبوده است همزمان با آن صدا شیشه پنجره ها پریده و خانه ها لرزیده بود من عبر تون در سریراک میانه آسمان بر اثر انفجار شکل گرفته بود به شکل عروس دریایی دیده بودم. شکل آن با توجه نزدیک تر یا دورتر دیدن باید فرق می در میان مسافران افرادی هم بودند که آن را به شکل قارچ ماتسوتاکه دیده بودند. فکر میکردم نزدیک دو ساعت است که ترام متوقف شده اما وقتی از کسی که ساعت داشت پرسیدم گفت توقف بیش از سی دقیقه نبوده. اگر از این نظر هم که در این فاصله اسهال نگرفتم به قضیه نگاه کنم، پس آنچنان مدت درازی توقف نکرده بود تا زمانی که به کارخانه رسیدیم اسحال به من دست نداد در کارخانه فرویچی، رئیس کارخانه و سرکارگر در اتاق پذیرش از ما استقبال کردند و رسیدن ما را تبریک گفتند اشک ها جاری شدند بی اختیار ریختند مسئول دفتر قسمت زنان لطف کرد و با تشت و سطل از چاه آبا نگهبان لباس زیر و رویی را که باید عوض میکردم برایم آورد حوله را در آب میچلااندم و با آن بدنم را پاک می کردم. با اینکه آب تشت را چند بار عوض کرد باز هم سیاه می شد. به وقتش از بالا تا پایین لباسم را عوض کردم. همسرم و یا هم به ششپز خانه رفتند. وارد دفتر شدم و وضعیت بمباران شهر هیروشیما را به رئیس کارخانه گزارش کردم. خورشید غروب کرده بود که وارد کارخانه شدم شیشه پنجره ها همه شکسته پریده و پخ شده بود اما ساختمان و دستگاه های ریسندگی مشکلی نداشتند کارخانه کتان و کارخانه پنبهزنی هم به جز شکستن شیشه هایشان مشکل دیگری نداشتند به آشپزخانه سرزدم بادی که از پنجره چرخان میوزید بخار را بیرون می برد و داخل مثل همیشه بخار آلود نبود وقتی از زن آشپز درباره اتفاقی غیرعادی پرسیدم گفت به جز بشخابهایی که از روی قفسه افتاد و چندتا از آنها شکست مشکل دیگری نبود به خوابگاه کارخانه رفتم و نگاه کردم خورد شیشه ها چارو شده در گوشه سالن چون کوهی بر هم انباشته و با روزنماهای قدیمی پوشانده شده بود از مسئول خوابگاه که سوال کردم گفت از بین کسانی که از هیروشیما گریخته و آمده اند، افرادی را که زخم امیق داشتند یا به هر نحوی زخمی و مریض بوده اند، مرخصی داده و به شهرستانشان آزم کرده بودند مدیران و رؤسای بخشها نگران خانواده هایشان بودند پس همگی به هیروشیما رفتند جز کارگران و نگهبانان فقط رئیس کارخانه و سرکارگر باقی مانده بودند پس تا مدتی کارخانه راه اندازی نمی شود. از طرفی شکی نبود که همگی مانند من از بمباران هوایی بعدی می درسید.